الحمد لله رب العالمين الله على نبينا وآله سؤال لكم آیه 16 هم فرمودی بذارید ببینم آیه رو بعد خب چی من گفته بودم؟ از کردن که جواب لو اگر مازی منفی باشه مثل ما تلاو 90 درصد بدون لام میاد ده درصد ممکنه با لام باشه درست شد اه. مم؟ اه. مثل لولاکل لما خلقت افلاکل با لام مند. ده درصد اینطوری میاد فسیح لام نداشت تو قرآن هرچی هست لام نداره. هفت اون جایی که منفی با ماست اون جایی که مثبت نوت درصد با لام میاد درست شد 10 درصد ممکنه بدون لام بیاد تو قران هر چی آمده با لام آمده مثل ولو شعنا لرفعناه و بقا قایدی که آیه خب به خب باشه ظالم شما وقتی آیه رو بله هر کسی ظالم باشه از نظر خداوند مجرمه زرم جور نیست این از ظلمن این از شرکل از این عظیم ظلم هیچ موقع بدونه با خودمون مثبت که نمیشه ظلم جرمه ظالم مجرمه یعنی شما اگهی که بخونید ببین و من از لمم من افترا علی الله من او کذبه به آیاته ان الله لا یفلحون اونایی که بله ظالمه به خودشه چون ظالم اینجا داره میگه کسی که افترا کنه یا تکذیب کنه در واقع این ظلم کرده به خودش و در پیشگاه الهی مجرمه خب بریم تمام بسم الله الرحمن الرحیم و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربّه فقل انما الغیب فقل انما الغیب لله فانتظروا اینی ما منال منتصر و یا قولون و و آتفست عطفه بر یعبدون آیه قبلو نگاه کنید، و یعبدون من دون الله مالا یزرهم ولا ینفعهم که واقا و یعبدون واقا استینافی یعبدون و یعبدون بعد دوباره داشتیم و یقولون هاولا شفاها اونا و یقولون دقت میکنی یعنی این جزئه کارهای مستمرشون و یقولون لولا لولا اینجا بعدش فعل آمده به این میگن لولا تحزیزیه با زاد که اگر بعدش فعل مستقبل بیاد برای طلبه من میگم لولا تقرع در درسک این طلب به چرا درس تو خونید اما اگه بعدش مازی بیاد یعنی گذشته بیاد برای توبیخ و تندیمه مثل اینکه شما درس نخوندید رد شدید حالا من میگم لولا قرات درس چرا درستون نخوندید اینجا بعدش مازی اومده یعنی به حال اعتراض و به حال توبیخ و تندیم ها میگن لولا انزل علیه من مرربه اینجا آیتون منظورشون یعنی بگی نشانه ای که اونها رو بگو داهون کنه همون متا آزل وعدون اون آیه ای که میگه میاد و نابود کننده هستش آ این چرا بگو نرسیده یا آیاتی که خودشون تو سوره اسراء دیدید توصیه میکردند چون موجزه نمیتونه درخواستی باشه خداوند در یه دورانی موجزات درخواستی رو جواب میداده و بعد هم اگر موجزه درخواستی رو مثل شطور ساله میزدند استیصال میکرده در مورد امت اسلام این سنت رو نکرده لذا معجزات درخواستی اینا که بر اساس اناد بود میگفتند که فرض کن شما چشمهی داشته باشی باقی داشته باشی کوهی از طلا داشته باشی یا بری داخل آسمان و از اونجا برای ما بگو نوشته بیاریدید این نوع مجزات میگن چرا اینهایی که ما گفتیم و درست انجام نداده چرا نتونسته تا اون پیشنهاداتی که ما دادیم رو عمل بکنه این لولا اونزله برای توبیخه آخه چرا چیزهایی که ما خواستیم انجام نداده لولا انزل عني هي آيتون من رب به صفته آيتون سلام اولادش چی برای طلب فقل فقل حالا ف میتونه فای سببیت باشه ولی اینجا بهتر اینه که شرطیه باشه یعنی فای جواب شبه اینه فای فسیه فای چی چی؟ فسیه با صاد. یعنی نشون میده که قبلش یه چیزی بوده افتاده فسیه یعنی روشنگر، روشن کننده نشون میده قبلش جمعه بوده افتاده مثل ازر به اصاکه الهجره یعنی چی؟ بزن با این اصاد به این سنگه ازره به اصاکر هجره بعد بگه فنفجرت اسمه تا هشته این فنفجرت این فاش میده قبلش یه چیزی بوده افتاده چی بوده؟ فزروهو به ها پس با اصاد زد به اون سنگه فنفجرت آه؟ اینجا هم اینجا جی بوده این لکه هازا اگر به تو این رو دوباره گفتن که لولا انزل علیه آیه و مبه ان یقولوا هاذا فقل معلوم شد اگر چنین گفتن به انبر بگو فقل انما الغیب لله بگو غیب اینو امور غیبی ها درخواست معجزه درخواست عذاب این نوع امورات غیبی که اختیارش به خداست الغیبو لله فقط به دست خداست دست من نیست شما اومدید از من میخواید در صورتی که اختیار این امور به دست خداست انما الغیبو لله الغیبو ممتده لله رو رو بنابراین فاپای سببی است به همین دلیل که غیب اختیارش به دست خداست فانتز رو و فاید. منتظر باشید انی معکم منظر منتظر منم با شما منتظرم که سرانجام این درخواست های شما چه خواهد شد درست شد عذاب درخواست کردید آیات درخواست کردید آیات اختراعی اینا دست من نیست دست خداست منتظر باشید من هم با شما میگیید منتظر امنی معكم انی استیناف بیانی است معكم منن درست شد منال منتظرین, منتظرین؟ معكم منال منتظرین دوتار و هم خبر اند است شد معكم مع و اننا دو و هم اینی اینی منن این بهتر از اینه که معکم رو متعلق به منتظرین کنیم بهتر از نظر عدبی ها میدونی چرا؟ چون معکم بخواد متعلق به منتظرین بشه منتظرین هم من هم الفلام هم منتظرین یه مقدار جلوی این که معمولش بیفته جلو رو بگید میگیره به همین دلیل آه میگن معمول سله نمیتونه بر موصول المنتظرین مقدم بشه به همین دلیل از نظر ادبی میگن که معکم رو متعلق به منتظرین نکنه بعضی میگن نه معکم متعلق به منتظرین چون ظرفه و ظرف و جار و مجدور دارای وسعت میتونن تو کلام به این طرف و اون طرف برن علایی حال از نظر معنا متعلق به منتظرین یعنی اینی منن منتظرینم اکم او؟ ولی اگر از لحاظ لفظی بخوایم ساختار رو درست کنیم یعنی اینی من منم در کنار شما منر منتظرین منم جزء منتظرانم که این درخواست های نابجای شما به کجا خواهد کشید اختیارش دست من بگید فقول إِنَّ مَا عَلَى الْغَيْبِ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ خب تمام من من نه نه چیز به خود این نیست یعنی منظورشون یه دونه آیه است میگه چرا حتی یه دن آیه از طرف پروردگارش از این آیاتی که ما گفتیم نازل نمیشه یعنی آیتون واحدتون مرده چرا یکی از درخواستای ما هم خداش به جا نمیاره میگه دست من نیست اگه دست من بود کار رو تمام میکردم بشینیم ببینیم تا خدا چه میکنه گرفتی چه از میکنم نه اصلا اون نیست واقع استینافی هست و ازا ازق نناس رحمتن من بعد ذراء مستقوم این آیه رو خوب دقت کنید ازا لهم مکرون فی آیاتنا ازا مستقبل محقق الوغور رو نشون میده چون خداوند چنین کار رو میکنه یعنی هنگامی که چنین مطلبی اتفاق بیفت که یقینیه ازا ازغنا ازغنا یعنی بچشونی ازا ازغنا اناسه به مردم رحمتن مخئوله من بعد زراغه بعد از نقمتی مخئوله ازغناس رحمتاً مفهول دو, دو مفهول اگر رحمت خودمون رو بچشونیم به این مردم بعد از زررا منبعد زررا این منبعد متعلقه به هر ناست. یعنی چشوندنمون بعد از بگه زررا باشه زررا یعنی نقمت مقابل نعمته گرفتار بودن در یک گرفتاری یک باره لطف خودمونو بهشون گوشهشو نشون دادید خب اینجا باید لعنشکرتون لعزیدن نکن امیر رو مومه یه داره داریت و نحجر میگه اگه گوشه نعمت به طرف شما اومد آه؟ اشتباه نکنید مثل گوشه یک پارچهیه که به طرف شما دارید بکشید این رو با شکر تا همه اون رو به طرف خودتون مواده اخصاش رو با قفلت دورش رو با قفلت از دست بدید منبر ذرا این خیلی مهمه ها که رحمت رو میگه بعد از شدت بهشون بتشونیم تو سختی گرفتاری قید یه ها نسیم رحمت الهی بیاد که میادم ازا میگه این جز سنت های خداست چی میشه؟ این اناس افراد شکور نیستند چون میگه ازا لحو مکرون فیایات اینا این همون یهولون همون آدم های ناسفاستند این ازا ازای فجایی است از نظر ما حرفه و در بعد از این شرطیه و ازا جای فا میاد جای فای جزای یعنی الان جمله اسمیه فا میخواست شد یعنی باید میشد لهم مکرن فی آیاتنا ولی به جای اون میشه ازا بیاد دلالت بر فجاءه کنه ناگهانی گرفتید موقعی که اعداث شرط این باشه یا ازا که اینجا ان چیز ازاست ازا ازن هم لهم مکرون لهم خبر مقدم مکرون مبتدا مؤخر فی آیاتنا متعلقه به مکرن میگه ناگاه خودعه میکنن مکر میکنن در آیات ما. اذا لهم مکرون فی آیات به جای اینکه به طرف ما بیان، به جای اینکه بون سرمست میشن و بگید زیر همه چی میزنن، خودعه میکنن، نیرنگ میکنن، دین رو بگید خراب میکنن. لهم مکرون فی آیات این ازا نشون میده که چی میگه به محض اینکه شدت از روشون برداشته میشه رحمت سراغشون میاد یه دفعه افزار کار میکنن اصلا آیات ما رو فراموش میکنن و با آیات ما دوگانه رفتار میکنن مکرون بی آیات ما. نشون میده قبلش داشتن چیکار میکنن تذمر میکردن فلان میکنن به محض اینکه رحمت میاد شروع میکنن آیات الهی رو باهاش بازی کردن توضیح میکنن به یه شکلی بگو. رقف جوش میکنه میگه قل بله بله بله, بله, بله. منبر زرها هم مسترخون مسترخون صفتی زرها جمله بعد از نکرسه قل میگه پیغمبر به اینها بگو اینجا نگفته فقالا چون چیز نداره اونجا جاداش که یه شرط در تقدیر باشه باقری نمیگون یه قولون اینجا فقول نیست قوله استیناف بیانی قول الله اسره و مکرن بگو خدا سریعتر است از شما در مکر شما زیر زیرکی کار میکنیم موقعی که تو شدت هستید التماس و نظر و نیاز و غیره وقتی که لطف به طرفتون میشه شروع میکنید همه اونا رو فراموش میکنید توجیح و توجیح و سرگرم شدن به چیزهای دیگه خدا اسرع و مکرن مکرن تمیزه این ازاد الالت بچی میکرد ازاد خجاه های اینچی ناگهانی دلالتی سرعت میکنه نمیکنه میگه به محض اینکه رحمت میاد سراغشون ناگاه یعنی بلا خاصله سریع سریع ملوازی میکنه خب بعد میگه الله ها اثره میگه شما همون سریع میزنید زیر میز همه چی رو به هم میریزید خدا از شما بگید واردتر در زیر میز زدن این صنعت مشاکل است سنعت چی چیه بگید مشاکله سنت مشاکله اینه که یک عبارتی میاد یک عبارتی میاد یک عبارتی میاد و کلماتی توشه عبارت دوم برای تناسب لفظی با این عباراتش چیده میشه و ایلا معناش معنیه بگی لفظی که ما میدانیم نیست الان مثال بزنم گوش کنیم یه مثال از قرآن بزنم میگه مکرون که با همین مکر خودمون بود. مکرون و مکرالله والله و خیرال. ما این مکرو یعنی چی؟ یعنی مک کردن زیراوی رفتن با آیات و خدا بازی کردن قول دادن عمل نکردن تو سختی هزار تا نظر و نیاز کردن به منزه که رحمت از ما بهشون چشنده شد همه رو فراموش نمه مکرو دیگه مکرو و مکرالله مکرالله میشه ترجمه کرد به این معنام یعنی خدام زیراوی رو خدام با اینا از در من مکر صفحه سعیه است. این و مکرالله معناش این نیست این به اعتبار کنار لفظ اون واقع شدن اینطوریه بلکه اینجا یعنی و عزال الله و مکره هم. اینا مکر کردن در آیات الهی خدا هم مکر اونها رو نقش براب کرد و الله و خیر الماکرین نمیشه بگی خدا بالاتر از هر مکاریه بلکه یعنی خداوند بگید برطرف کننده است هر مکری رو بالاتر از هر کسی غیرل رو مان گرفتی چی گفتی یا نه؟ مشخص این بهش میدن صنعت چی چی؟ مشاکره در مورد استهزا تو قرآن هست الله و یستهزه رو به خدا که استهزا میکنه. آیا یعنی خدا پاسخ استهزای اینها رو به نه و احسن میذاره کفه دستش؟ تو اساس سیاق عربیه مثلا شعر معلق است معلقه جاهلیه میگه الا لا یجهلن عهدن علینا الا لا یجهلن عهدن علینا یعنی چی الا یعنی آهای حواستون باشه لا یجهلن یعنی نفهمی نکنه خریت نکنه عهدن علینا اهدی بر ما دیدید تهدید میکنه این جمله تهدیدیه. کسی یه نفر مباده در مورد ما بگید دست از با خطا کنه اهد یه نداره در مورد ما نفهمی و خرید کنه بعد پشتش میگه فنجحله فوق جهل فنج فنجحله فعل مزاره بعد از فا. یعنی فنج فنجحله فوق جهل جاهلینا ترجمه میشه بکنین یعنی ما خرید میکنیم بالاتر از کسی که خرید کرده این نیست بلکه منظورش چیه؟ یعنی ما جواب میدیم به خرید بالاتر از هر کسی که میتونه جواب بده گوش میبریم ما لذا این آیات تو ترجمه از آیات سخته یعنی این آیاتی که توی سنایهی مثل صنعت مشاکله داره که شما باید ترجمه کنی اینجا ازا سرعت رو نشون میده یعنی به محض اینکه افتاده بود تو چاله ها به محض اینکه بگو دستشو گرفتیم آوردیم لب چاله لقد انداخت یعنی سریع. بعد خدا میگه بگو بهشون الله او. خدا از شما سرعتش بیشتره تو جواب دادن آه دوباره برات میگردونه تو همون چاله الله اسرعوا منکم اینجا کلمه او معجزه است چون ازا سرعت رو میفهمونه و مطلب می گفتم مثل حسی تو چاله افتاده بود داشتش به قول محروف و قبوق می کرد که این از چاله در آریم به مرزی در که گدیم لب چاله لغت زد میگه تو حالا تا لب چاله رسوندیم سریع لغت زدیم ما از تو سرعتم مشتره قبل از اینکه که لغته که باره حولت می تو همون چاله برت می سر سرچاش این آیه درس داره. که آدم ناسپاس نبود باشه گرفتار فلان داره به محض اینکه چی میشه فراموش میکنه اینجا خطر داره خطرش اینه که دوباره برمیگردی تو همون چاله این دفعه دوباره هرچی التماس بکنی دیگه سخت بیه همه بتونید لذا میگه چی؟ الله و عصر و مکرم بعد تازه این مال دنیاتونه امن رسولنها زیرا امن یک توبون هم آتمان. آخر. زیرا رسولان ما یک یکتبون یک توبون فعل مزاره هر آن شب روز بیداری خواب ان رسولنا، یکتبون یک توبون ما تمکرون یعنی چی؟ همیم. می نویسن ما تمکرون تمام این ناسفاسیه شما بله ملاکه این رسولان ها رسولان ما کارگزاران ما یک توبون فعل مضارع نمی همه یعنی ناصفاسیاتون بگید ثبت میشه اینطور نیستش که فکر کنی حالا کی دیده کی شنیده تو سختی بودیم حالا آوردنمون بیرون ها نه این دنیا حساب کتاب داره ان رسولنا یک توون ما یعنی ما تمکرون یعنی ماش میتونه مای مستریه باشه یعنی یک توبونه مکرکم یا مکرهای متعدد تمکرون یعنی عادتشون اینه یا ما تمکرون مایه محصوله باشه که مای محصوله نشنگی مکر میکنی همین کاری که بود کردی ظاهر یه چیزی میگید, میگید خدایی ها اگر از این سختی نجاتن بدی درست و حسابی آدم میشن به محض اینکه بگو نجاتت میدیم جور دیگه رفتار میکنی پس معلوم میشه مکر میکردی زیر کاسه یه نیل کاسه ای داشتی نرست اینو تعبیر ازش کردیم به مکر چون سر حرفشون وای نمیستن تعبیر کرده ازش به به مکر ما میگیم. میگیم پس معلوم میشه بگو تو ذهن دیگه چیزه دیگه ای بوده زیر کاسه نیل کاسه ای خب. حالا بریم ببینیم خدا چه ل ای آیا تو فهمیدید دیگه این دوتا رو از نظر لفظی اون گره من همه رو باز کردم حالا دیگه بحیش دیگه میتونید چون شما از لفظهایی که بگذرید با قواهید و گرامل لفظیش کامل آشنا باشید دیگه اون موقع راحت میتونید هر تفسیری رو هر دیدگاهی رو خوال لذی یوسیه رو کن فلبر و البحر حتی ازا کنتم کلفل که و جره نبهن به ریهن تیبتن و فرهو به ها جاعتها آصفون و جاهم الموجو من کل مکانه و زنو انهم احیط بهم دعو الله مخلصین له الدینه لئن انجای تنابن من لنکونن نمینش شاکری خوش این داره تو یه نمونش خوبل لذی او خدایست خدا خداست مبتلا خبر خوبل لذی یوسیه رو ساره حرکت کرد سیه حرکت داد درست شد یوسیه به سیر در میاره شما را فلبرد و در تمام این خوشکی های آلم بر و تمام دریاها خشکی مقدمه بر دریا ها هم شده چون آدم تا جایی که روز زمین میتونه را بره. راه بره. معمولا راهها بیشتر زمینی است تا راه های بگی دریایی. اون موقع این بوده الان فل هوام در هر حال این خداست که مسیر را برای شما ایجاد کرده تسخیر کرده هستی رو در اختیار شما قرار داده شما رو مسلطه بر این ببینید ما با کشتی میریم خودمون میریم ولی هیچ وقت نباد خودمون رو ببینیم اونی که ها داره ما رو میبره کسی دیگه از نیصدیهه رو کن خدا داره حرکت میده حالا مییم حتی این حتی بهش میگن حتی ابتداییه یعنی جمله بعدش از نظر نفذی جداست چون ازا اومده ازا شرطیه است صدارت داره اصلا چون از لفظی جداست ولی از نظر معنایی متعلق به راست چون معناش یعنی تا این که قایت معناش میدینی در معنا قایته در لفظ نقطه سر خطه گرفتی چی چی گفتم؟ یوسیه رو کن فلوهر برد قشنگ کیف داری میکنی نگاه میکنی میبینی به دریا داره ما آب تکون تکون تکون نرم همه چی تو کشتی نشستی از بالای کشتی از پنجره داری نگاه میکنی به این دریا یا تو ماشین نشستی داری نگاه میکنی به این بیابان و به این صحرا ها؟ قشنگ دره شما اصلا احساس نمیکنی خطری هست یوسیه رو کن فلوهر بر بردار بر بر بر. اما حتی از کنتوم فلفولک این الفولک کلمهش هم جمع هم مفرد با غرینا جمع... جمع و مفردش به یک لفظه مشخص شد برای یعنی؟ توی جمع نه و مفردش به یک لفظه چون این لفظ فول هم به معنای جمع و هم به معنای مفرد با کلمه و حالا باید بفهمیم کدوم با قول معروف یکی از اینها حتی ازا کنتوم فلفولک یعنی عظام آورده که یعنی شما قطعا کشکی سوار میشید حالا البته دریا رو گفته چون تو دریا خطراتش بگید بیشتر از خشکی ولی تو خشکی هم, هم میتوره سوار اسب یعنی چموشو شده اسب چموشه رنگ کرد اصلا نمیدونه چیکارش بکنه همین میشه ولی خطر دریایی خیلی بگید ملموس‌تر خطر هوایی همینم هم ملموس‌تر قضا میگه ازا کندم فلفل فلفل خبر کندم و جراینن بهن جراینن اونش به چی پس معلوم میشه که چیه جمعه. جمعه. چون کندوم یعنی همه شما آدما همه که تو یک کشتی یعنی در کشتی ها وقتی شما ها در کشتی های متعدد خودتون سوارید کشتی کوچیک بزرگ هر چی. در کشتی هاتون سوارید و جراینن به جای کندوم وجری بهم این با برای تعبیه است جرا یعنی حرکت کرد جاری دیگه حرکت کرد جریان داد جرا به یعنی چی جریان داد حرکت داد و کشتی ها شما رو به حرکت در آوردن اینجا جاش بود بگ و جراینا. بگی بکو سنت التفات التفات خود این سنت التفات تو میگه کنتم رو کن سند التفات خود این التفات میشه ای که کانال یه دفعه عوض میشه آدم توجهش التپته یه من دارم به شما نگاه کنم التفت این تو ای این است این یک باره انسان توجهش جلب میشه یه خصوصیاتی هم داره خصوصیتی که اینجا میتونه داشته باشه یعنی انگار از یه دفعه وقتی که اینطوری میشه انگار از صفحه چی میشه از صفحه رادار میرید بیرون ها کونتپل فول قشنگ نشاستی تو فول یه دفعه که اینجوری میشه انگار اصلا دیگه روی صفحه رادار نیستی و جرایم بهم به هم شدین متوجه شد چیه عسكردم یا نه تونستید متوجه بشین یعنی دیگه اصلا انگار مخاطب نیستی غیب شدی و جراینا بهم بریهن طیبته و برهوبه ها می بردشون خب جراینا بریهن این با متعلقه به جراین است آیا یه دونه فعل شه به فعل میتونه دو تا حرف هم نوع دو تا حرف یه شکل بهش متل هم بهم هم بریه این بحث ادبی خیلی سختی هم شاید مثالش نتیجه و ماحصلش اینه یه فعل میتونه چندین حرف جربا شه سبحان الذي عصر را به هی من المسجد الحرام ال المسجد الاقصى الذي باركناه له لنوري به عبد من المسجد ال المسجد درست شد معلوم یه لحظه بله سلام علیکم من سر کلاس هستم اگه سریع بفرمایید اشکال نداره خواهش میکنم من خدمت شما زنگ می‌زنم خداحافظ بفرمایید بعد و جرل نبهم بریهن طیبته بریهن طیبته بریهن متعلق به چیه آیا میشه دو تا حرف جر بله چند تا حرف جر میتونه متعلق باشه تا حرف جر میتونه بگو متعلق باشه به فعل الان اون فعل اس به ابدهی با من الا لام لن متعلق اما دوتا همشکل و هم نمیشه دو تا حرف جری که هم شکل باشن بگید و بگو هم معنا اینجا الان همشکل هستن و نباید هم معنا باشن بای اول گفتن بای چیه؟ تعدیه هست بای دوم بای سببیت یعنی جریان کشتی شما رو حرکت دادن کشتی شما رو بگی. به چی بوده؟ به سبب ریه تیبت یه نصیم لطیفی هم میزنه بادبان کشتی رو داره حال میده شما رو داره میبره خوب به ریهن و فرهو به ها و فرهو بگیر فره ها یعنی خوشحال شد فره ها بهیر اگه باش تردیه باشه یعنی خوشحال کرد فره تو به اما اینجا باش با سببیت و فرهو به ها یعنی چی؟ یعنی کیف دارم میکنن از این نسیمی که داره این کشتی رو میبره بادمانش داره حرکت میده درسته و فرهو به ها چی میشون اون وقت جرعی به همه ها جاعت ها ریحون پاسه جاعت ها یعنی جاعت ایلی ها میآید به سوی این حالا این ها به کی برمیگردی باید برس جاعت ها ریحون آسفون اصفر یعنی در هم کبی ریحه آصف یعنی چی بگو باده در هم شکن اون قبلی به ریهن طیبته به قرینه صفت طیبه باید معنا کنیم نسیم لطیف باد ملایم باده باد بگو ملایم این به ریهن آصف به قرینه عاصف باید چی کار کنیم بگی؟ طوفان <تصف> خانه یه دفعه طوفان توفان میاد جاعت ها خواه کی میخوره؟ به پولک به کشتی ها. این بهتر جاعت ها بخوره به پولک کشتی ها. اما بعضی زدن به ریه انتگیبت این گفتن نزدیک نزدیکه بله هم به اعتبار جماعتش مفرد ما بعضه بردن به ریهن تیبتن بخوره یعنی اون نصیم ملایمه یه دفعه بگید برون نصیم ملایمی وزد طوفانی در هم شکن گرفتید یا نه جاعت هاری ها از نظر معنا به کشتی بهتر از نظر لفظ مرجع نصیمی که بهتر درست شد و معنا مقدم من لفظه چون به ریهن تیبتن و فرهو این کنتوم جرعی فرهو فعل شرطن جاعت ها بگید جزای شرته جاعت ها ریحون آسه. نشد یا شد ریحون یه دفعه بعد تون میاد. این هنوز جزا تموم نشد همونطور که فعل شرط سه تا بود جزای شرطن بگید ستاست اون ستا با هم فعل شرط انگوامی که اینطوریه این میشه کنتم جراینا فرهو این ستا با هم عطب شده فعل شرطه جاعت ها و, جا اهم و, جا اهم و جا اهم جاعت هم و جاعت و جاعت هم الموجو بله عطب از بجای جاعت هم به کشتی میخوره طوفان سنگین میاد سراغ کشتی و جا الموج و سراغ بگیر مردمان داخل کشتی میاد موج. الموج الفلام بره هموار متوجود یا نه موجه پدر این ها رو در میاد اون با طوفان شدیده پدر کشتی شونه در برده کشتی رو انداخته بالا پایین ها و متوجه دیدن نمیگه موج میاد سراغ کشتی ها میگه موج میاد سراغ شما بعده اومد سراغ بگی توفانه سراغ کشتی ایجاد موج شد موج اومد سراغ شما و جا همون موج این جا همال موجو من کل مکان این کل من کل مکان میخواد حسابی خوفش نشون میده از چک و چهار طرف موج آخه یه موقع از موج از پشت میاد این کشتی رو میده جلوتر این رو باد موافق کشتی تونتر هم بگی میره هم. یه موقع باد از این ور میزن از این و کشتی دیگه در بگی تلاتو این دیگه قرار ندار جاؤهم الموج بله ال الموج جنسه بله انواج میشه همه نوع موجی همه نوع موجی از چک و چهار طرف به شما میزنه موجای کوتاه موجای بلند ها نه انوا... انوا... انوا... انوا... انوا همه نوع موجی از چک و چهار طرف به شما بگید سراغتون میاد یعنی چون میدونی چرا موج مهمه برای آدما؟ ها باد مهمه برای اون کشتی باد میزنی کشتی رو بگی میندازه توی تلاتون باد میزنه اون باد ملایم رو از بین میبره تو مرجه دوبه باد که این کار کرد موج میاد این موجه میخوره کی بگید این مردم ها. موج میاد سراغ اینها، ها چی میشه وزن نو همه قایه ها. چون بعد از اون بهم. و زنو انده هم اوهی تا اینجا زنو یعنی گمان میکنن درست شد ولی واقعیتش اینه گمان نزدیک به یعنی بعضی قدر اینجا دیگه یعنی میکنن ولی حقا انسان هیچ موقع امید خودش از دست بگیره نمیده ولو مثلا از بالای آسمون با هوا پیما داره میفته پایین صد متر مونده به زمین ها هنوز امید داره همونو هم داره بازی یه دعایی میکنه میگه شاید این صد مونده به زمین زمین بشه پنبه ما بیفتیم روش ها؟ لذا وزدنو انهم اوهیتا به هم اوهیتا به هم یعنی دیگه کارشون تموم شده اوهیتا به یعنی حل اپنی به هم نایفایلشه احیط به هم یعنی حلق مچهول آورده یعنی این که دیگه کارشون بگی تموم شده دیگه مرخص هم بلا دیگه مردم یعنی حلق انا هم هم اسم هم نست احیط به هم الله مخلصین اله هدین الله مخلصین اله هدین به نظر من دعو دعو الله حال است از برای واه همون موقع که گمان میکنن کارشون تمومه یا نه همون موقع که دارم گمان میکنن کارشون تمومه گمانه دعو الله امید از دست نمیدم بشر این دو ذاتشه گفتم که دعو الله اینجا خدا رو میخوانند در حالی که خدا رو میخوانند مخلصین له دی این نه حال است از برای واو دعو مخلصین به خدا متعلق است به مخلصین دین یعنی دینشون رو اون اعتقاداتشون رو خالص میکنن قبلش خودشو پهلوان میدونست قبلش به پولش تکیه داشت به چیزش تکیه داشت هر چیزی رو برای خودش در کنار دین بگو توجیحات داشت اما اینجا فقط و فقط دیگه میشه بگو خدا هیچ کسی به جد خدا دیگه تو زندش نیست محبت محبت یکیش مخلصی نه حال است از واقع دعو بله بله, شده. بله. که گفته شما آخرین نهست در هر حال میگه اینها زن رو بعضی اومده دعو رو بدن گرفتن از زن رو من اینو نپسندیدم بدن اجتماع درست شد؟ ولی با دعا و با حال شدنش خیلی قشنگ میشه میگه وقتی خیلی اوضا به هم میریزه درست و حسابی اینا دیگه تقریبا 99 درصد باورشون میشه که دیگه کارشون تمومه با همون حالت در حالیه که بگید فقط خدا رو دارن دعا میکنه از تهدل اونجا فقط خدا رو میخوان دعا الله مخلصین نلهدی درست شد؟ نشود خوب این بشر این دیگه این لعن انجیتنا این لام لعن بهش میگن لام توتعه قسم مثل لعن شکرتم لعن زیدن میگه بله ان شاء الله کدام دعو شد این لعن انجایتنا یعنی قائلین این قائلین لعن انجایتنا این معقول قوله مقوله بگید قوله و اون قائلینه حال است از باب دعو اعتقاداتشونو خالص بکنن برا خدا فقط خدا رو میبینن اونجا زبونشون چی میگه؟ این از باطنشون باطنشون به جز خدا با کسی دیگه اون موقع ارتباط نداره زبونشون چی میگه؟ زبونشون میگه لعن من منحازهی لنکونن نمیدش شاکری میگن خدایا اگر از این مشکل از این بدبختی نجاتمون بدی لنکونن نمینن. شاکری ما دیگه شاکر میشیم اونجا میفهمن که همه این بدبختی ها از کجا آمده؟ از عدم شکر ها؟ میگن خدایا اگر باز دوباره با قول خودمون ما رو اوزامون رو, رو راه کنی این دفعه دیگه آدم بشیم این دفعه دیگه شکل تو میکنیم گرفت که چی شده نه انجایتنا فعل و فائل به خدا میگن دیگه منحازهی حازهی هم گفتن اسم اشاره یعنی از این مصیبت بزرگ از این بدبختی اسم اشاره نزدیک برای تعظیمه از این بدبختی که گیلنگ رو گرفته از این بدبختی بزرگ اگه نجاتمون بددی نکونن نه جواب اگه شرط و قسم یه جا جمع بشن جواب و برا اونی میارن که مقدمه اینجا جواب اومده برای لام که جای بلاه. لکونن نمین کردین دیگه خدای آدم میشه نمیگن لکن لکونن نمی ال آببدین. چون لن... احساس میکن قبلا عبادت میکن همه مشکلات و بدبختی ها رو میکنن از کجا آمده؟ آدم شد میگن خدای این دفعه اگه بردنی ها دیگه آدم میشیم دیگه تو رو فراموش لنکنن نمی نشد. اون لعن شکر تو چیز لعن انجای گفتم که مفعوله یه بگید قائلین اون قائلین حال است ازواب دعاو مخلص اینه حال است ازواب دعاو یعنی خدا را میخوان در حالی که باطنشون جز خدا به کسی ارتباطی امیدی ندارد زبانشون همینو این رو آه زبانشون هم این رو میگوین زبانشون چی میگه؟ میگن خدا یا کردیم اگه این دفعه نجاتمون بدی آدم میشه لنکونن نمیدن لام توته توتعه یعنی مقدمشی توته قسم یعنی جا اسمش رو یاد بگیم ما در واقع با این کاری که داریم میکنیم درسته من 5 تا 6 تا شما یعنی یک دور کامل صرف و نحو و بلاغت اونم کاربردی یعنی به گونه ای که شما اگر یک کلاس نحو بشینید بقول خودمون 10 تا گرامر یاد میگیرید ولی در اینجا ما تو هر جلسه شعر 20 تا 30 تا قاعده دقیق قایده گرامری، قایده معانی بیانی و سیاق جمله. قای اوقات هم چیزهایی در مورد ترجمه هایچی گیرمون بیارد بهتون نگیم. اونایی هم که نمیگیم به دلیل اینکه بلد نیست. خب. چی شد جمعه؟ جره اینه فره هم. جاعت ها. جاعت ها و, و زنو. جاعت ها و جاعت ها و زمین این سه رو همدیگه جزای شرط ای هم دیگه. این سه رو همدیگه مثل اینکه که میگم بابا ما تو فارسی میگیم میگیم اگر بیای و فوش بدی میگیرمت و میزنمت یعنی اگر بیای و فوشبدی دوتا رو همدیگه اتفاق بیفته جوابشی میشه میگیرمت و میزنمت اون دوتا با هم میشه ستا ستاست خب حالا چی میشه این به قول خودمون با خدا شرط کرد گفتش اگر خلاص و اوزامو درست کنیم دفعه آدم میشم خدا میفرماید فلم این لما چیه مازی ها یعنی از اول کارش همین بود لما مثل احساس اضافه میشه به فعل و شرط منصوب به جزایش ماضی میگه فلم ما انجام پس وقتی خدا بگید نجاتش داد نجاتشون داد فلا ما انجا هون. این اعضا خیلی جالبه اعضا کجایی میگه همین که از شاله کشیدش بیرون همین که از تویه به کشید تا تو داشت میخوند به این طرف بره برزید یهو باد خوابید اومد رسید به ساحل همین تا پاش رسید به ساحل اعضا هم یبغون فلعنزه به غیره یبغون ظلم میکنن باز همون قلط ها با همون تعدیه و همون شاکر معلوم میشه که آدم شاکر باقی نیست میگه به محض اینکه میشه میشه اضاهم ناگاه هم اینا یبغون یبغون فل مزاره دوباره یسلمون شروع میکنم به ظلم کردن فل عرض متعلق است به یبغون بقیه بقیه دوره هجرات داره فره این و اهداف ما فقط اخراب تب. میکنن به بقی ظلم باقی با فارسیش. باقی و باقی اصلا مرموم علام میگه چرا بق... بقا یعنی طلبن دارید بیه؟ ابتقا هم بقی یعنی طلب چرا به باقی میگن ظالم میگن باقی میگه چون این به حق خودش قانه نیست هر دست دیگران هم ببینه همه رو بگو طلب میکنه طلب محضه به قول نه من مال دیگران هم مال خودشه این به این دلیل بهش مرحوم هلاخه میگه میگن باقی ازا هم یبغونه به از به غیر الحق به غیر الحق به غیر الحق, بغیر الحق. این حال است از فایل یک بود یعنی ظالمین طلب میکنن هرچی رو زمینه به غیر الهق بدون اینکه که حقی داشته باشن یعنی حق و باطل هرچی گرشون بیاد باز دوباره شروع میکنن به جمع کردن و ضرب کردن و به غیر الهق نه بایی مئیت وقتی گفتم حاله یعنی بایی مئیت یعنی محق غیر الحق یعنی ظالمین یعنی مجانبین علی الحق حق رو میذارن زیر پا دیگه حق نمیشناسن خدا بگید نمیشناسن دوباره شروع میکنم بعد خدا میگه یا ایه هنناس آهای مردم اون خدایی که تو کشتی بودی به غلط کردن افتاده بودی اون خدا رو زمینم الان هست ها؟ یا ایها الناس مردم انما بغیوکم الا انفسکم تمام این ظلمایی که دارید میکنید برمیگرده به خودتون به خدا بر نمیانما هسته به خدا بر نمیگرده بگو به مظلومینی هم که زیر ظلم شما بر نمیگرده برمیگرده اِنْ أَحْسَنْتُمْ هر گولی بزنید به سر خودتون می‌زنید هر پهنی هم زدید به سر خودتون می‌زنید یعنی اینه دیگه هر به چی لذا گفتش من تا توی ذیل این آیه روایت هست میگه ما أحسنتوا إِلَٰهَ أَحَدٍ وَلَا أَسَأْتُ من تا حالا نه به کسی خوبی کردم نه به کسی بدی امیرالمومیبه از جای ترجل داره میگه من تا حالا یه سر سوزن نه به کسی خوبی کردم نه یه سر سوزن به کسی بدی کردم همه موندن توش میایه رو خوب که این احسنتم احسنتم و هر خوبی کردم به خودم کردم هر بدی هم کردم به خود هم کردم لذا اینما بقی و کم الا این نما برد یکم علا شد این نما هست روها یعنی فکر نکنی حالا اومدی تو خشکی داری ظلم نه؟ اینا دارید گور رو می‌کنی. داری با قول خودمون آتی... تیشه به ریشه خودت میزنی این دنیا حساب کتاب داره این متها الحیات دنیا متها اضافه شده به الحیات از دنیا هم صفت حیات بروس شد این متاع دو جور قرائت شده یکی متا او یکی متاع البته یه قرائت ضعیف ضعیف هم داره متاع به جر که اون موقع در واقع بدل میشه از انفس کاری به کاش یا صفت میشه اون اصلا قرایتی نیستش که مقابل ذکر باشه ولی دو تا قرایتی مشهور داره متا او متا اگر متا او قرایت کنیم این نما عدات حصر بقی و مبتدار علا انفوسکون متعلق به بقی علا انفوسکون متعلق به بقی متا او خبر مطاع خبر ترجمه چی میشه اون موقع؟ ظلم شما بر خودتون فقط و فقط بگید مطاع این دنیاست یعنی تو این دنیا میتونی بگو تو سر کسی بزنی اونم تازه اگه بتونی ولی از این سر پل خر... پل خر بگیری رد شد بیخید بلغومتو میکرد یعنی اول بخول محروب بدتر. گرفتی چی شد یا نه انما بغيكم ظلمكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا اینجا اون موقع انفس به معنای خودتون نیست که متعلق بشه مثل لا تلمزو انفسكم لا تلمزو انفسكم یعنی چی یعنی ای به خودتون رو ای ای کسی نمید ای به خودشو بگیره این انفس منظور بگیر دیگران که یعنی هم نوع شما گرفته چی شد یا نه؟ پس میشه چی؟ انما بقی علی الانفوس کن یعنی ظلم شما به هم نوعان خودتون بگیر بهره این دنیاست تو این دنیا اتفاق میفته ولی آخرت بگو سر جای خودش هست. چون؟ این مال در صورت رفتی. که آهای مردم ظلم بکنید بر دیگران این فقط تو این دنیا تو این امتحان الهی محفظه و الا ظالم سالم نمیمونه عبرت ببرید از ظالمینی که بودند اون گنده گنده هاشون صدام رو ببینید غذافی رو ببینید, هر کی دیگر رو ببینید. بغیرم عبرت اگر به نص بخونیم که قراحتی که ما داریم به نسبه نسب بخونیم میشه این نما بغیوکم الا انفسکم بغیوکم مبتدا الا انفسکم خبر اینجا نفس میشه خودشون وقتی خبر شده یعنی ظلم شما به دیگران ها یعنی بغیوکم علال اخرین الا انفسکم آ شما ظاهرا به دیگران ظلم کردید مال دیگری رو خوردید اما در واقع بگو به خودت ظلم کردین انما بقیوکم علا انفسكم چت اون موقع متاع چی میشه متاعن میشه مفعول و مطلق برای فعل محذوف مفعول و مطلق برای فعل محذوف یعنی تو متعون متعال حیات دنیا متعا مستره دیگه مثل سلام تو یعنی چی؟ بهرمند میشید متعال حیات دنیا بهرمندی همین حیات دنیا رو یه مالی از دیگری دزدیدی تو همین حیات دنیا یه چار روز تو دست تو میچرخه اما میگذری و میری تبعاتش میشه جمله مستنفه ها مطاعه مفعول و مطلق یعنی تمتعون مطاع الحیات این یه تركه یا حال بشه از ضمیر کم شد؟ یعنی زمیر کم تو کجا بگید انفسكم یعنی انما بغي وكم على در حالی که ممتعين در حالی که بهره مند هستی تو این حیات دنیا درست نه نه به خودتونه در حالی که حال بودنش خیلی قشنگ از نظر معنا در نمیاد بزا ترکیب دوم سر متاع الحیات بعد چی میشه خلاصه حرف آقا این شد که زن کردی دو صبح تو این دنیا میتونی بگید یا آب و علفی داشته باشی سممه این سممه یعنی چی؟ یعنی یه مدت طول میشه سممه این حیات دنیا حالا دو روز سه روز یک سال دو سال یزید با همه یزیدیش چی شد؟ سال شست و یک اون جنایت رو کرد سال شست و چار و اون بدبختی سه سال بی بادت چی شدن سال 66 بود دیگه مختار اومد همه رو بقولم خودمون از دم تیغ با اون تیغ خودش هرج و که بلد بود خلاصه همه اینا رو آدم آدم که نه منجی نمی همهشون رو سر جاشون هشون درست شد یعنی واقعا اینطوریه میگه چی ثم الینا مرجع و تازه اصل کارون اون ایلینا خبر مقدم مرجع اکم مرجع مستر اینیه. یعنی رجوع تازه اون ور استرخته این ور حالا ایلینا هم مقدم کرده فقط به سوی ماست مرجع اکم بعد چی میشه؟ ایلینا مرجع اکم فه این چرا میاد پیش ما؟ چرا فقط پیشون؟ فنونبه اکم به ما کنتم تعمل تحدید از این بالاتر نیست ف نونب برای اینکه با خبر کنیم شما رو آه. زیرا با خبر می کنیم شما بله فای و همون فایض دینام درسته فایض هم بیاد همون فای دیم فایض و تحلیل نتیجه چهار تا اسم داره جمله بعدش تحلیل و نتیجه نیم همون استینام ف نونب به آکام با خبرتون به ما کنتم تعملون به ما کنتم تعملون کنتم تعملون ماضی استمراری یعنی به همه اون کارایی کنگ کردیم فیلمشو میذاریم براتون آه. دیدید میگه و کل انسانه الزمناهو تائرهو فی اونقه و خرج جلهو یوم القیامته کتابم یلقاهو منشورا کفا به نفسه که این کفا به نفسه که مثل این لعن هم یعنی قائلی نه حال از, از فایل نخلجو براش نامه عملش رو در میاریم قائلی نه در حالی که بهش میگیم کفا به نفسه که و ملکه حسیب هم خودت گلاتو بازی کن ببین چند مرده حد مرد بنونت ببکن به ما کنتون تعملون نبه یعنی چی؟ خبر فن اخبرو کن ببین یه چیزی بهتون بگم والا از در ادبی جملات خبریه اولا و بذات غرض از جمله خبریه اولا و بذات دو تا چیزه یکی فائده خبر یکی لازمه فایده وقتی بلد بشی فائده تور خبر یعنی من جمله خبریه میگم تو شما و یاد میگم میگم زید زید رفتونه به احساس شما شما نمیدونید بهتون میگم تا بفهمید این میشه فایدت تو. خبر 70 درصد 65 درصد خبر ها از این اسمه تنید ما خبر میدیم اون شخص مقابل من رو جاهله به خبر میدونیم میگیم تا به این 65 درصد این تاییه یه 25 درصدی 20 درصدی لازم فایده است لازم فایده اون جاییه که متکلم خبر میده میدونه که متکلم مخاطب میدونه اینو با اون که میدونه اون میدونه بهش میگه برای چی؟ برای خاطر اینکه اون بفهمه من میدونم مشخص شد؟ چون اون از خود خبر ای نمیبره چون میدونه ولی میفهمه که من رادیو که نیستم توتی هم نیستم پس من دارم میگم پس خودم بگید. میدون. این لازمه فایده تل از ملزومش فایدهینه و لازمش به ذهنش میرسه که این میدونی مثل بچه‌ای که رفته مدرسه کادعرس نخونده کارنامه رد حالا فکر میکنه بابا و ننه نمیدونم. بابا ننشم فهمیدن کارنامه‌ش هم تو جیب خود پسر است. فکر میکنه اونا نمیدونم اون حالا فهمیدن پدر بهش میگه پسر رد شدی یا این که داره بهش میگه پسر رد شدی در واقع داره چیکار میکنه؟ بهش میگه که من اینجا خداوند روز قیامت برای بگید مفتزه کردن و لازم فایده بعد این دوتا قرز که بره کنار اغراض دیگه پیش میاد اغراض مجازی یکی از اغراض مجازی برای توبیخ کردنه اینجا وقتی خدا خبر میده میخواد بگه ما میدونیم شما چه خلطی کردید و اونها هم بگید خجالت بکشند در روز قیامت لزام میشه یوم تطلس سرائر ها سرائر جمع سائر یعنی باطن هر چی که قایم کردی میاد رو همه ظاهر میشه تموم شد فننبه وکم به ما به ما متعلق به ننبه وکم کنتم کن. تعملون یعنی کنتم خوب تمام شد جمع سریره یعنی سرش باطن بین مطاره، مطاره شد و گفتی بین و براتم. البته قرائت نص رو ما بهتر میدونیم و الا بقول خودمون قراءت رف در نزد خیلی ها اولاست الان شما یکی از چیزها رو مراجعه کنید به تفسیر مثلا مجموع بیان ببینید اول قراحت رفت رو گفته یا قراحت بگید نصف رو گفته کدوم میشه حالا بذارید ببینم من اینجا حتی تفسیر چیز رو دارم مرمون تبریسی میگه قره هم مطاعت به نصف درست شد حتما لفتش هم گفته دیگه برگه بعد میگه میگه ولفرقو بین قراحته ننکه ازار رفت روشت میگه قراحت رفت داره قراحت نصف داره. خب بریم آیه بعد پس گفتش چی؟ آخر آیه قبل گفت چی؟ گفت شما هر کاری میخوای بکنی آه. دیگه ظالمتر از چنگیز و نمیدونم خیلی از این کسان دیگه و حالا خیلی قصر در رفتم بلا اون آیزن و رئیس جمهور آمریکا رو دستور داد خلاص دو تا بمب بر اون گذاشتن یه آن بگی چندین به قول برابر تمام دیکتاتورهای عالم آدم کشته شد هنوزم بعد از سالیان سال بعد از 60 70 سال هنوزم اونجا مردم دارن معلول و مشکلدار و غیره و اینا دارن به دنیا همه یعنی ظالمین بعضی هاشون بالا به دلایلی به قول خودمون بگو با یه تصمیم توی یه ساعت مثلا یازده تا 11 اروب یه او دیوی سهزار نفر کشته بیشون که اگه بخوای حساب بکنی چنگیز با شمشیر رو نمیدونم نیزه و با, با چوب و تخته و سنگ و اینشون چیزا هر چقدر هم کشته باشه صد تا مثل اون به اندازه اینا. یعنی در هر حال هر کاری بکنی تو همین دنیاست دمام میشه لذا ببینید چی میگه این نما مثلال حیات دنیا همین حیات دنیایی که همه سرش دعوام کنه اینو بهش میگن تشبیه تمثیلی تشبیه چی چی؟ بگید تمثیلی تشبیه تمثیلی تشبیه مجموعه به مجموعه است تصویر به تصویر احسن جز به جز نیست حتا جزء بجزء میخوای تشریح کنی غلط در میاد مجموعه به مجموعه تشریح میشه چیزی چی شد یا نه ها نشد مجموعه به مجموعه مثل مثل الذين املوا التوراث ثم لم يحملوها که مثله انمار یحملوا اصفار این طرف یه یهودی هست و تعلیم می‌بینه و عمل نمی‌کنه و دیگران ازش چیزی میشنون عمل میکنن و بعد از مدتی دید جهنم این یه سکانسه یه برای عقلی باید داشته بشی. اون برای یه سکانس حسی برات گذاشته یه خرد تو بیابون روش پر از کتاب تمام جهنج ها و تمام چشمه ها و قضا ها و همه تو این کتابه هست اما این خرجون، نمیداند اینا رو همه رو میبره دیگران از این کتاب ها ممکنه استفاده کنن راه و رو پیدا کنن اما ای خره این خره تو این بیاغون میره عرب ریزان عرب ریزان, ریزان. تشمیگی و گشتگی میبیده سفر میشه میگی ای این دوتا چقدر مشابه. اصلا بحثی نیست که خالا خره عرب چه قاطر جاش بیاد فرقی بگو در اصل تصویر نمیکنه. یهودیه بره کنار مسلمانی بیاد که عمل، نمیکنه کنه فرقی در اصله بگو تشبیه نمی جزء جز به جز قصد تشبیه نیست قصد نیست که بگه کتاب تورات ما مثل کتاب روی خرم قصد اصلا ما اینجا هم همینطوره میگه انما مثل مثل یعنی هیئت موقعیت شن انما مثل حیات دنیا اضافه شده به الحیات الحیات از دنیا صفت حالا این حیات دنیا الان ممکن شما بگید مشبه ما مفرده نه نه نه مشبه مفرد بگید نیست اینجا مشبه یه چون شما دنیا. حیات دنیا این حیات دنیای ما چجوریه ابتدا خیلی زیبا سبز میشه بهار میشه سبزی میاد همه جا بل بل بلبل میشه بعد مدتی میگذره تا به میشه بعد همه خشک میشه زمستون میشه اب بمیره این الهیات دنیا متوجه نه یه تصویره یه مجموعه است مثل این که بگیم موقعیت اهل یهود موقعیت آلمان سو شأن اونها یعنی مجموعه یه مثال من بزنم فرض کنید میگه که مثلا شاعر میگه که شما شب اول ماه رو نگاه کنید مثلا شب اول ماه رو دیده شب اول ماه آسمون رنگیه شب اول ماه آسمون شما وقتی میخواید ماه شب اول بدینید کی میدید به آسمون نگاه کنید بعد از غروغ خورشید قبل از تاریک شدن میگی آسمان اون موقع آسمون حالت سرقاء داره یعنی حالت کبود داره. یه تزا نقره ای پانه. یعنی حالت حالته که گل این داره. آسمان در اون موقع با اون رنگ شما هلال می‌بینید توش, می توش این هلال او. او این هلال. بعد اگر شما نگاه بکنید ماه در مقابلش یک مجموعه ستاره‌ای داره. یا خوشه پرگی کرد تا شما توی پرچمه هم معمولا ماه رو در مقابلش ستاره کرد شما یه عکسی از ماه شب اول میدارید پرس کنید شب اول ماه شبال ایدفت رو میخواد ثابت کنید یه عکس داخلید از آسمان سبه آسمان یه رنگ آنکوی نکسه هلال ماه نقرهیه یه ستاره نقرهیه در مقابلش بگیرید یه اکسی تو که ثابت کنیم فردا حیل فیلت درست شد؟ یه اکسی تو نداختیم بعد دارید میاد بری یه ها نگاه کنیم ببینید که روز زنی یه شابلون افتاده ماشقص شد؟ یه دونه بگید. شابلون افتاده شابلون که بودید؟ یعنی که روش گروفه حرف باب و دوش دارید این شابلونه رنگش مثلا فرس کنید همون حالت نور ای هر نیالتی سوال می دره با حرف نون روش نمشتن اینطوری ها چاشون می دند میخوام نور رو یاد ادن این این عکس چقدر شبیه به این شاطونه آیا شما آسمان رو میخواید ششوی کنی به زمین تصویر این زمین آیا بدنه هلال رو کسی تشمیه کرده به بدنه نور؟ نه کسی ستاره سرعیار و خوش فرمین رو تشمیه کرده به نقطه نور؟ نه چه خصوصیت داره نقطه نور باشه یا نقطه زه باشه؟ فرقی؟ ولی این دوتا رو بذاری کنار هم، اکس به کنار ایشتار رو هر که نگاه کنه متوجه پیشه این رو بشه نها چی چی بگی؟ م. تمثیلی جز به جز مدنظر نیست است. گرفتید بهش میگن تشبیه تمسیلی یا بهش میگن تشبیه مرکب یا بهش میگن تشبیه غیر مفرد معلوم شد براتون تو تشبیه غیر مفرد این یه بحث از تشبیه کتن بمینید شما چون آیش بلنده یه مقدار نگاه بکنه که تشبیه که زیبایی این حاله درکش کنید خب